ای سبا نکهتی از کوی فلانی به منا زار و بیمار غمم راحت جانی به منا قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد یعنی از خاک در دوست نشانی به منا در کمینگاه نظر با دل خیشم جنگ است زبرو و غمزه او تیر و کمانی به منا در غریبی و فراغ و غم دل پیر شدم ساغر میز کف تاز جوانی به منا منکران را هم از این مید و سه ساغر بچشان و گریشان نستانند روانی به منا ساغی ها اشرت امروز به فردا مفکن یاز دیوان غذا خط امانی به منان دلم از دست بشد دور چه حافظ می گفت کی سبا نکتی از کوی فلانی به منان